بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلاة والسلام على اشرف و وخاتم النبيین وبعد برمبه خد كتابة أجوري كتابة فضل قيام الليل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحافظة أبو عمرو المقر قال حدثنا أبو القاسم سلم بن سعيد ابن سلمة الأستجي والأستجي وحدثنا أيضا أبو عمر قال حدثنا إن جاء دار نسخي خاتي خليب وزهنس عبد الله قال حدثنا أبو بكر محمد ابن الحسين ابن عبد الله الأجوري إن جاء دياله از تعلیف امام آجری شروع میشه اینجا اسنادش بود از اس کسی که این کتاب را با اسناد بهمون رسونده از ابو داوود گرفته نه اون ابو داوود صاحب کتاب سنن تا امام ابو ابوبکر محمد بن الحسین ابن عبدالله الله الاجوری قال المحمود الله تعالی في كل حال این به حمد شنین این کتاب این تصنیف را آغاز میکنه المحمود الله تعالی ون که صاحب حمده که ستایش بشه بیعیب نقص الله، في كل حال در هر حالی والمصطفى محمد صلى الله علیه و سلم وعلا آله اجمعین و بالله استعین و سلوات و درود بر رسولات الله علیه و سلم و بر اصحاب یارانش و سپس مبيت با استعانات با الله ان کتاب را شروع میکنم کتاب قیام اللیل اعلموا رحمن الله وإياكم أن الله عز وجل أثنى على المتهجدين في الليل فأحسن عليهم الثناء ووعدهم أحسن ما يكون من الموعد الجميل ورغب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحث أمته عليه وهكذا العلماء رغبوا فيه وحثوا على قيامه ونبل عند جميع المسلمين من كان له حظ في قيام فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم والحظ الجزيل ليكون الراغب في قيام الليل على بصيرة من أمره يتاجر مولاه الكريم بعلم ويحسن الخدمة للمولى رجاء القربة منه إن أصخنا أنا إمام أجري در خطبي إن كتابت در بحث تهجد وقيام الليل و نماز شب وقتی گفته میشه نماز نماز شب نمازی که بعد از فریزه عشا خوانده میشه به این نماز گفته می شود نماز شب نماز چرا ما در شریعت خودمون داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدا دروکت رکعت رکعت می خوندن و فرض نبود سپس بعد از اینکه اموی رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت میشه و همچنین ام المومنین خدیجه رسول الله صلی الله علیه و سلم به معراج میره در معراج که الله قسمتی از آن را در قرآن یاد میکنه سبحانه الذي اسراب بعبده اول ابتدا اسراب بهت المقدس و آنجا نماز میخونه به پیامبران الله سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم با براغ با آسمان ها میرود تا جایی که جبریل میگوید دیگر بعد از این آسمان هفته نمیتوانم با تو بالا بیایم جایی میرمن که جبریل اجازه آن را ندارن در ملاقات با پروردگار بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم متعال الحجاب الله متعال حجاب يبوت أن جاء الله متعال برمسلماناني كشهادتين وقفتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كدر حرم بعد نماز در أزان بهش فراق نميشان حي على الصلاة وحي على الفلاح نماز پنجاه وعده را ابتدا الله فرض میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و سلام. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلام به هنگام برگشت موسی علیه السلام در اون آسمون‌ها می‌بینند. موسا مشفق بر امت و بر بشر رسول الله را صلی الله علیه و سلام توصیه میکنه که از الله تخفیف بگیره که 50 وعده بر امتش تنگینه میگم امتحان کردن بنی اسرائیل تحملش رو نداشتن. از الله تخفیف بخواه. الله تخفیف میدهند. سپس تخفیف میدهند از پنجاه چه پنج و چهل تا آخر به این پنج وعده میرسد سپس الله متعال میگوید این پنج وعده را قرار دادم این پنج وعده در مقابل اون پنجاه وعده هست و عجر اون را خواهد داشت بر های پیشین چنین نماز شده بود در هر شریعتی در هر دینی از ادیان پیامبران این نماز بوده الله متعال بر زبان عیسیٰ در گهواره از نماز یاد میکنه و اوصانی به در گهواره است بچه هست نوزاده اولین سخنانی که بر زبان میارد بر این که الله است بر این که الله او را دستور داده که اهل نماز باشه و اوصانی به چقدر این نماز عظیمه از اون معراج طرفی از اون بچه و نوزادی که در گهواره سخن میگوید و بشر را توسیه به نماز مي کند استرفی ابراهیم علیه السلام همسرش فرزندش رو رها قومش رو رها مي و از الله متعال چنین مي خواهد ربنا انی اسکنت من ذریتي بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا بیقیم الصلاة بچه و همسرش رها مي کند تکو تنها برای چی برای این نماز را به پاس بدارند اهل نماز باشند چقدر نماز مهمه موسیٰ عليه السلام وقتی که به موعد پروردگار میروند الله چنین میگوید این انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری الله در میعادگاه با موسیٰ به موسیٰ علیه السلام چنین میگوید و اقم الصلاة لذکری چقدر نماز بزرگه شعنش عظیمه و اوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه سليمان عليه السلام از نمازی غافل میشه نمازی را فراموش میکنه میات مي شمشیر را برمی داره و اون چیزی که سبب مشغولیتش شده بود را از بین میبرد اون اسبان زیبا اون اسبانی که كم... مشغولش کرده بودن حتی توارت بالحجاب خداشون میکنه که دیگر این نماز ازش فوت نشه دیگه چیزی او را مشغول نکنه از این نماز موبایل تو را مشغول میکنه فلان برنامه و فلان برنامه هست در موبایل تو را مشغول میکنه حذفش کن والله هیچ چیزی مثل نماز نیست توصیه الله به رسول الله در اون به عیسی در اونهواره به موسی در اون میادگاه و به ابراهیم رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت میکنه بر کفار و مشتکی اون وقتی که او را از نماز مشغول میکنند ملا الله قبورهم و بيوتهم نارا الله قبرشون را پر از آتش بکنه ما را از نماز عصف مشغول کردن نمازی از نماز رسول الله فوت میشه ناراحت و خشگیم میشه الله اکبر چقدر این نماز عظیمه چقدر این نماز عظیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان تبی دارن که آب را در کاسه غل خودشون داشتن و بر پیشانی خودشون میپاشیدن و امت را توصیه به نماز میکنن بل نمازه بله این نماز که الله جل شانه در معراج بر رسول الله صلی الله علیه و فرض میکنه این نماز فرضمون پر از تسخیره چنانچه رسول الله صلی الله علیه و میفرماید اون موقعی که اصحاب و یارانش بوده یک فردی از شما میبیاد نماز میخواند نصف اجر نماز رو دارد نصف نماز یه کسی کمتر و کمتر یه کسی یک دهم ده یه کسی شاید یک هم داشته باشه. شاید اون یک صم نداشته باشه ریا باشه شرک باشه برای پدرش و مادرش و برای اینکه مردم او را ببینن نماز بخواند نماز نافله و سنت برای این گذاشته شده که جبران اون کوتاهی بشه. اون نماز شکستمون بشه، اون نماز سستمون بشه اون نمازی که ترس از این هست، که نماز منافقین باشه با یقام و, و ال الصلاه قاموا كسالا اگر بنماز ها شدن بیدار شدن بلند شدن با کسالت و تنبلی بلند میشن باید ما ترس و حراس داشته باشیم با اون لحظه‌ای که خستگی بر ما غلبه میکنه اون لحظه‌ای که نماز ازمون فوت میشه و احساس گناه درش نمیکنیم نماز خیلی مهمه خصوصا نماز شب غیر از اینکه گفتم اون نماز فرض ناقصت را پانسمان میکنه نقصش رو جبران میکنه شرف و مقامت و مكانتت نزد الله بالا میبره این تهجد. گفته میشه تهجد به خاطر اینکه در آخر وقت از شب خونده میشه و الا تهجد همون نماز شبه و تراوی هم همون تهجدی که در اول وقت از شب هنگام خونده میشه. از راحتیه. دری از درهای رحمت محروم آن که اهل نماز نباشه. مسلم و مؤمنش زمانی که پا به مسجد میگذارد سنت است. اون لحظهی که با پای راست وارد مسجد می شود بگوید اللهم افتح لي ابواب رحمتک پس نماز درهای رحمت نماز درهای رحمت محرومه واقعا اون کسی که از این رحمت الهی محرومه واقعا محرومه بخاطر همین اینجا برای اینکه توفیق الرحمت ما پیدا بکنیم با این دعا امام آجوري ان كتاب را آغاز ميكون اعلموا رحمنا الله و الله رحمتش و مشمول حال من و شما قرار بده ميگه ما و شما را مشمول رحمتش الله قرار بده أثنا على المتهجدين الله جل تناوه برکساني كأهل تهجدان شنان شخواهدو ما در ان كتاب الله بخوبیات میکنه از انهای که اهل تهجدن فا احسن عليهم الثناء بانیکی الله جل شأنه از انهايات میکنه ووعدهم احسن ما يكون من الموعد الجمیل وبا اون بعد الزیبا الله انها را وعدده ده ورغب النبي صل الله عليه وسلم على قیام الليل ودر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مارا تشويق کرده و امت را تشويق کرده وحث امته و وهاکذا العلماء رغبوا هم وهمشنون علماء كساني كدر تشفيق بتهجد كتاب نوشتان وحثوا على قيامه بتشفيق قردن بار طيبان سنة بزرق ونبول عند جميع المسلمين من كان له حظ في قيام نز مسلمان بزرق واره عزيمه انفرديك نبيلة انفرديك اهل قيام تهجد فنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم مهم در ان كتاب یاد میکنیم برای برادرانمون از این فضل بزرگیه الله متعال گذاشته برای امت و الحظ الجزید لیکون الراغب و فی قیام اللیل على بصیرت من امره تا اینکه اون کسی که میخواهد اهل تهجد باشه اهل بصیرت باشه نیه اهل علب باشه در این امرش در تهجدش فقه تحجدشو یاد بگیره چون این تهجد معامله با اللهه يتاجر مولاه الكريم إن الذين يتنون كتاب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور أي تجارة عند الله لن تكسد تجارتك نزأ الله کساد نمیشه زیف نمیشه زرارتش نمیاد یرجون تجارتا لن تبوری جاید دیگر. الله جل شانه در قرآن میگویت یا ایوه الذين آمنوا هل ادلكم على تجارت تنجیكم من عذاب أليم ان تجارته الله معامله با الله نماز معامله با الله خسا تهجد و يحسن الخدمة للمولا رجاء القربة منه بتون بالزیبئی ان تهجدش را انجام بده اولئیک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسیل أيهم ا و یرجون رحمته و یخافون عذابه و یخافون عذابه این آیه در شان اونهای نازل شده که فرشتگان را می پرستیدن و اونها در صورتی که فرشتگان اون من پرستش نبودن بلکه خودشون نیازمند بپرستش بودن که الله را بپرسن اولائی که الذین یدعون الى ربهم الوسیله اونها هستن که با نماز و ذکر و طاعت و عبادت با این وسیله خودشون را به الله نزدیک میکنن این وسیله هست که اهل سنت بهش اعتقاد دارن در تفسیر این آیه یبتقون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب بر این که سابقون سابقون بشن پشتتاز این معرکه بشن نزدیکترین به الله بشن این وصف کیه؟ مؤمنی که میشه تابه بسیع پروردگارش ایهم اقرب و یرجون رحمت و یخافون عذاب اهل ترس از الله و اهل رجاء و امید و تمع دار به انچن حزد الله این وسیله دیگه چی بالاتر از این نمازی که الله و ما مارا به اون تشویق میکنن فاما ما وصف الله عز و جل به المتقین من اخلاقه مشتریفه في الدنيا این چیزی که متقین را الله به اون وصف میکنه از اون اخلاق شرافت ای اخلاق بزرگی چه اخلاقی؟ این رفتار معامله با مردم داد و ستت با مردم نه والله الله جل شأنه وقتی که در قرآن میگوید به رسول الله صلی اللہ علیہ وآلیم اخلاق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلیم اون دین کاملش بود در رفتارش با مردم و با همسران و فرزندانش و با امتش در رفتارش با الله رفتارمون منفقت اون رفتار با خلق خدا نیست. یک جزئی. از اون رفتار که الله ازمون خواسته که درست باشه رفتار و معامله با مردمه. اون چیزی که ما برای اون خلقت شدیم رفتار با الله و ما خلقت الجنه والانسه الا لیعبدون. ما برای عبادت و پرستش آفریده شده ایم. شکی درش نیست که تعامل با خلق خدا مهمه. تعامل با خلق الله مهمه که خوب باشه نیک باشه. اگر ما احترام والدین خودمون داریم رو سر چشم میذاریم چون الله در قرآن به ما توصیه کرده و بالوالدین احسانا، چون الله در قرآن گفته وَقْفِذْ لهما جناح الظُّلِّ من الرَّحْمَةِ در مقابل پدر و مادرت زلیل باش والله اگر اینجا دارم قسم یاد میکنم چون یقین دارم بر اینکه که یکی از اسباب هدایت خود را بر این میبینم که اگر نمازی میخونم اگر طاعت و عبادتی انجام میدهم، پشت سرم مادری بزرگی داشتم که در تهجدش اسم و نام من را فراموش نمی کرده و نمی کند. دعای پدران مانن که ما را حفظ میکنند. احفظ الله ای از جمله حفظ اینی که الله را حفظ بکنی در تعامل با خلقش خصاً والدینت. تا الله تو را حفظ بکنه. تا دعای اون مادرت، اون پدرت در تهجدش، استجابت بکنه در حقت نه اینکه نفرینت بکنه نه اینکه دعای بدت بکنه مواظب خودت باش خوصا دعای پدر مستجابه دعای مادر مستجابه والله بین مظلوم اون پدر مادری که زحمت برات کشیدن والله بین اونها و بین الله حجابی نیست دعای آنها مستجابه و بدون ای مؤمن که صلاح دعا باشه دعا بکن از الله بخواه که بنده خوبی باشی بنده نیکی باشی رفتارها عوض شده ماها عوض شدیم نسل به نسل به جای اینکه با این پیشرفت ها بصیرتشون بیشتر بشه انحرافشون بیشتر شده به جای اینکه الگوی خود را پیغمبران الهی که این چنین یاد نیکی از اونها کرده الگوی آنها باشن الگوی شده غرب اون غربی اون فوتبالیست رو میشناسن اسمش چیه و چی نیست پیامبران الهی را نمیشناسه نمیگم صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلام پیامبران الله را نمیشناسه الله را نمیشناسه نماز را نمیشناسه این امته که در حال زعفه است بعض نشانه های قیامت که رسول الله صلی الله علیه و سلام می فرمایان علی الناس زمان قلوبهم قلوب الاعاج زمانی میاد قلب مردم قلب عجم جماعت میشه نه کرم نه مهمون نوازی نه احسان و نیکی نه خیرخواهی بلکه حسادت بغض کینه، کدرت، جنگ، قتال، انتقام شرع محمد صلی الله علیه وسلم چیه؟ همین در بحث تحجد حدیثش خواهد اومد سلام کردن قبل از تحجدت روی خوشت قبل از تحجدت صدق دادند بازم خواهد اومد خیرخواهی نسبت به مردم به فکر یتیم و مستمن بودن اینها اخلاق مؤمنه نیکی به والدین سلی رحم میمان نوازی از ایمان زمانی خواهد اومد رسول میفرماین میفرمایند که این اخلاقیات عوض میشن اون روزی که رسول اومده بود عجم و عربش از رسول الگو میگرفتن از کرمش اخلاقش مهربانیش رحمتش لطفش اون سخن زیباش و الگو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الگو نیکی بود برای همه برای غرب و شرق الگو بود ولی کن الان معیار شده غرب کلاس های رفتار را می برای خدمه هواپیما و خدمه فلان که بیا خوش باش خنده بزن لبخند بزن سخن خوب بگو در صورتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 سال قبل صحابه را اینچینین تربیت می کرد و ما نیازی به کلاس نداشتیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنش بر منبر و زیر منبر این بود اصلا راهش قدم زدنش الگو بود حتی در راه رفتنش الگو بود صحابه یاد می گرفتن از همون نشست و برخاستش چگونه بلند میشه چگونه نشینه چگونه وارد مسجد میشه با چه پای از مسجد خارج میشه اولویات را میفهمیدن این بزرگتره این کوچیکتره بزرگتری میفهمیدن می میفهمیدن می اینها رو رسول الله صلی الله علیه و آله یاد میداد و صحابه از همدیگر یاد می گرفتن. ولی که این آداب این رسوم نبوی این سنت نبوی از یاد رفته شده که باید ما زنده بکنیم این انحرافه اگر در خودت خصالی خصلتی از عجم دیدی وقتی گفته میشه عجم فکر نکنید که الا چون ما نمیدونم فارسی چون ما کردیم چون ما ترکیم چون ما بلوچیم عرب نیستیم پس اینجا رسول از ما به مذمت یاد کرده خیر بحث از این نیست بحث از اخلاق نبویه اون جاهلیت عربش همه بر اخلاق محمود نبودن هرچند که اون قومی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ام بعوث شده از بهترین اقوام بر روی زمین بود قریش انتخاب شده رسول الله صلی الله شده از عرب بود همونطور که خودش میگه از کنانه تا اینکه میاد به قریش و بنو هاشم که میگه منو از لا لای اینها انتخاب کرد الله و من مبعظیده شد مصطفا شده, شده. استفا شده انتخاب الهیه همه جا چه در عربش چه در عجبش خوبت است ولیکن خوبی همچون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا نمیشه و انک لعلى عظیم بالاتر والاتر و بهتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیدا نخواهی کرد به خاطر همینی که از هیچ پیامبری همه پیامبران الله ما بهشون ایمان داریم قبولشون داریم رو اخلاقشون مقامشون شرفشون ولی که از اونها به ما از رفتار و منششون یاد نشده ولی از رسول الله صلی الله علیه و سلام بهمون صحابه نخ کردن از کل رفتارش و نشس و برخاستش برامون مفصل یاد کردن تا اینکه در دینمون با بصیرت باشیم قل هذی سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعني رزی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یاد میکنه درباره ابن جدعان همچنین درباره عدی بن حاتم تایی از درباره پدرش حاتم تایی که به کرم مشوره بازم اومده می در جاهلیت ام المؤمنین عایشه میگه رسول الله کان فی الجاهلیه یصل الرحم یطعم المسکین صلی رحم انجام جوامیدات قضا به فقران و ساکیم میداد فهل ذا کنافعه به دردش میخوره؟ قال لا ينفعه قال صل الله علی و لا ينفعه به دردش نمیخوره اینه لم يقول یوما رب غفلی خطیئتی یوم الدین بروز قیامت روز آخرتی اعتقاد نداشت نگف روزی پروردگارا بر بار اله ها گناهانم را بیامورس اول رفتارت با الله بعد رفتارت با مردم رفتارت با مردم وقتی قبول میشه اولی نماز که در روز قیامت سال اول نمازت رفتارت با الله بعد رفتارت با مردم فأما مواسف الله عز وجل به المتقين من أخلاقهم الشريف في الدنيا التي اعقبتهم عند الله عز وجل شرف المنازل في دار السلام ما اگر انسان مؤمن الشريف در این دنیا باشیم اهل عبادت و طاعت در عوض در روز آخرت چه مقامي خواهیم داشت والله جز مقام والا و مكرمي الله در بهشد اعلا فردوس اعلا جزء اون پاداشی نخواهیم داشت فضل علیهم بما تفضل به علیهم و وفقهم له الله بنیکی یاد میکنه از اون بندگانی که مشمول این فضیلت شدن و توفیق شدن فله الحمد علی ذاله الله محموده الله صاحب حمد صاحب ستائش خوبي ونكي هسكازش ياد بشه قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون متقين أهل قيام التهجد انهايك پريزقارا انهايك أهل التقوان از الله ميترسا جايقاهش ان كجاس في جنات وعيون دار ان بهشتي كبرس ششمهاس آخذين ما أتاهم آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين کانو قليلا من الليل ما يهجعون و بالاسحار هم يستغفرون ان تهجد نماز شب ان استغفار در نیم شب انها را چنین جایگاهی داد جنات نعیم در ان جنات نعیم پرز انواع می ببرود خانه هست آخذین ما آتاهم ان جایی کانواع نعمت را الله آنها میدهد اخذین معاتهم ما آتاهم ربهم. هم ربهم، کن و قبل ذلك محسین قبل از ورود به بهش اینها اهل احسان بودن به درجه احسان رسیدن درجه احسان درجه والایی هست که پس از اسلام و ایمان حدیث جبیل بارها گفته شده دیگر تکرار نخواهد شد شما بهتر از من میدونید فصفافه هم جل که رو به نو، با این مقامشون با این شرفشون الله اینجا یاد میکنه از اون خواب اندکشون توصفهم جل ذکره بقلت النوم انهم اكثر ليلهم قياما الى السحر انها الله چنین ازشون یاد میکنه کم در شب میخوابن کانو قليلا من الليل ما يهجعون الله میگوید یاد رحمه الله میگه از اینها یاد میکنه شب را کم میخوابیدن و بیشتر شب را پاس میداشتن به تهجد و نماز تا سحر ثم اخذ عند السحر في الاستغفار سپس در وقت سحر مشغول استغفار می شدن بخاطره اون گناهانی که ازشون سر زده که موجب خشم الهی میشه و نارضایتی الله با اونها و اشفاق منهم علی اعمالهم الصالح و بی مترس و حراسشون در مقابل اون اعمال نیکی که شاید به درگاه الهی مورد قبولیت واقع نشوند بیم دارن حراست دارن میترسن که شاید اعمال نیکشون پذیرفته نشه ترس دارن در مقابله اون گناهایی که ازشون سر زده که الله عقوبتشون بکنه این حال مؤمنینه رسول الله صلی الله علیه و در حدیث میفرمايان ینزلو تبارک و تعالی کل ليله الى السماء الدنيا هر شب یک سوم شب الله به آسمان دنیا میاد اینه یبقى ثلث الليل من يدعوني فأسجيب له كي هس دعا ميكون السجابتش بكنام من يسألني فأعطيه كي هس أزمن بخاهد من بهش بدهم من يستغفرني فأغفر له كي استغفار ميكونه ومن أورا ببخشم كي تلا يبخشش مكون ومن أورا ببخش أفتر الكريم لا يجيبهم أيفكم كني الله استجابتشن مكونه دعائشن قبولن مكونه والله بل يجيبهم بل كيجابت مكون الله اندعائشن انخصشن وهو أكرم من ذلك ثم قال جل ذكره فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الله جل شأنه أهلتها جدر بخودش نسبت میده وعباد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن سفته الرحمن الله دبر در سوره فتحت كردمیکنیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن بعد الله الرحمن داریم الله بندگانت اهل تهجدش را به خودش نسبت میده به این صفت نیکش به این صفت بزرگوالاش اینهایی که مشمول رحمت الهی شدن میگیت و عباد الرحمن از اوصافشون الذین یمشون اینهایی که بندگان رحمان الهیان آن يمشون یمشون علی الارض هون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا اینهایی که اهل دنیا نیستن هرج جوش نمیزنن برای این دنیا اونهایی که در رفتارشون با مردم کسی را اذیت نمی آزارشون به کسی نمی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دشنامی فحشی بدگویی شنیدن میگن سلاما بلشون میکنن اهل انتقام نیستن اهل کینه و کدورت نیستن اهل دنیا نیستن و الذین یبیتون ربهم اینجا وجه شاهده اینجا محل شاهده یبیتون مبیت اون کسی که شب هنگام اون کسی که شب بیداری میکنه به هنگام شب یبیتون لربهم سجدا و قیامه سر به سجده هست و ایستاده هست برای الله رکوع و سجده انجام میدهد اینها عباد الرحمنان فوصفهم جل ذکره انهم فی مبيتهم فی ليلهم لیسهم که غیرهم من سایر الناس الله این چنین عبادش اون بندگانش که به این صفت رحمتش نسبت میدهد یاد میکنه که اونها مثل دیگر مردم نیستن که شب را خوش بگزرانن و در خواب سیری بخوابن و لذت ببرن تا اینکه صبح بیدار بشون اینها، عباد الرحمن اونها نیستن اهل خواب نیستن ان عباد الرحمن ليس هم کغیرهم انها مثل مردم عادی و وذلك ان اكثر, ال... اكثر الخلق يتلذذون بالنو بشتر مردم لذت مبرن بان خوابشون و هؤلاء استاثر الخدمة لمولاهم الكريم انها عبادت را ترجیح دادن برون خواب لذت را از خودشون گرفتن خوشی را از خودشون گرفتن به خاطر رضای الهی اومدن به تهجدی ایستادن ثم وصفهم جل ذكره في موضع اخر فقال تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ان جنن بسفك الله می کنه در رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینید می ایست به الله تا تتفطر قدماه به شکاف می‌داش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود این جنین می ایست بود رسول الله ورم کرد ورام می کرد از بس می ایستاد به تهجدش در یک رقعت البقره و آل عمران این رسولمون بود این پیغمبرمون بود تتجافا جنوبهم عن المضاجع اینا مثل دیگران نیستن که بچسبن به اون لحافشون خوش بگذارنان بخوابن بس عباد الرحمن یدعونا ربهم اهل تهجد اونهایی هن که اهل دعان دامی از الله میترسان يدعون ربم خوفا وطمعا هم ترس دارن بیم و دارن از عقوبت الهی میترسان و هم طمع دارن بر اینکه بهش در بهشت فردوس اعلی الله متعال ببینن ان روزی که لذتی بالاتر از لذت رؤیت الهی نیست میخواهند طمع دارن که رفیق رسول الله صلی الله علیه و وسلم در فردوس اعلی باشن صحابي من كورساد يا رسول الله ميخا هم, هم على قال عني على نفسك بكثرة السجود ميخا رفيق من بشي نماذج زيادة سجد زيادة عن بده يعني أهل نماذج وقال الله تعالى أمن هو قانة آناء الليل ساجدا وقائمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب كيف يمكنك تفهمه فرد عالم أو عالم لا يستهدف برو بنماز شبش نقاكون هم من هو قانتون انا الليل أو يا أهل نمازه شب داره بناماز أهل سجد و قيامه يحذروا لآخره از آخرت ميترسه تمعد رحمة الله داره ورج رحمت ربه قل هل السول الذينا يعلمون والدنا لا یعلمون آیا مثل همن اون هایی که میدانن آن هایی که نمیدانن یعنی اون که میدانن اهل تهجدان وال هایی که نمیدانن اهل تهجد نیستن وال لا يعلممون انما يتذكر الباب اون کسی متذكر میشه پند پذیر میشه پند میگیره از این آه کهچیه که قلبش با الله صاف و پاکه اهل ایمان و اهل تقواص بترسی اگر سص شدیم. اگر تنبل شدیم، نه در مقابل فرض در مقابل تحجد، بحث تحجد، بترسیم، از این که ما جزو منافقین بشیم، اونهایی که وقتی که الله اونها رف هرام میخونه به جهاد، به طاعت و عبادت، بسوسی و تنبلی بلند میشن، بله یه جایی در بحث فرض میگه اذا قامو این السلا، قامو کسالا، جایی دیگرم الله در بحث جهاد ازش یاد میکنه، ولو اراد ولو الخروج لأعدو له، اگر واقعا می‌خواستن برای جهاد بیان، اعداد میکردن یعنی آماده می‌شدن، ولی کره اللهم بعاثهم فثبطهم، سرد شدن به خاطر چی؟ سردی از کجا آمد؟ الله نخواست که اونها بلند بشن، الله نخواست که اونها اهل جهاد بشن. ولیکن کریه اللهم بعاثهم اگر توفیقه تهجد پیدا نکردی به خودت سرزنش کن ملامت کن چرا این توفیق مشمول حال من نشد چرا نتونستم تهجد بیدار بشم خودتو ملامت کن حتما من مقصرم به درگاه الهی حتما من دارم که الله این توفیق را به من نداده و من محروم شدم از این رحمت از این دری از درهای رحمت وقیل اقعودو مع القاعدین الله انچنین وقتی که دوست نداشته باشه خلقی از خلائقش اینشنین اونها را محروم می‌سازه از درهای رحمتش صلی اللہ علی محمد و علی محمد